بسم الله الرحمن الرحیم.الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین معصومین الله تقدیر کردن دار.الجمیعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا جمعی.اللهم فرنا در وقت چون مظموشه مقدمه رو برانی پرمود بودن در بایی تقسیم مباحث از بایی مقدمه هستش اینجور نه بود برد شد و نه جمعه در این مقدمه تقسیم مجالی و اصول عملیه به لحاظ جرگیان اصول در احکام نه در موضوعات شبهات و حکمیم و چهار حسی رو ایشون قرار دادن برایت و افتیات و تقریب و که در احکام جاری میشن مناسبت در کلمات افرادی که بعد از شیخ آمدن بزرگانی که بعد از شیخ آمدن بحث هایی واجه این مطلب وجود داره که امدارد دحس ها رو هم دیروز گفتیم واجه بحث وقت هر در این موارد رو آیا حسول دیگری غیر این شهار هست، در شباز و حکمی جاری میشی از کرده از اصول ذکر شده اون که در شباز و حکمیه از حساس از که دیروز توضیحی راجع به این که چرا باید در اصول از, از حساس و بحث نکردن بیان شد و سه شباز نکته این تشار وش جار شد که همون نصف است که البته اضافه بر این ها اندکت کرده این که اصطور برایبه در ما جزء اصول نیست اضافه این چیزی که آن در ذهن هرگرات وجود داره چون غالبا از راه حدیث رفت رو بارد شدن از حدیث رفت همیدن هم بینید که خدا را حکم مجبوی رو درداشته این رو اعصی به این معنا گرفتن چون این رفت, رفت واقعی نیست یک نوع تصورت این جزا گرفتن ما شون حدیث رفت و براقه شرکی رو قبول نکردیم ارجاع شدیم به مسئله ازم تنجز عدم ترتیب و احکام جزائی در صورت عدم تنجز تکلیف که من شرقو عدم به اصطلاح وجود دلیم برکن باشه این رو از جزو اصول قصود خارج کردیم اساس و را هم از کردیم زیرا از بزرگان قبول ندارم حالا ما به یک معنی قبول کردیم که خواهد آمد استفاهو برادر که ما در شواص احکی قبول نداریم الا اصول در حقیقت دو تا میشه که اختیار هم تخیر که این هر و اصل هم برای اثبات حکم نیستند این توضیح رو اثر اصول به طور کلی به دو تقسیم میشه یک اصولی که همون حکم رو به عنوانه ثابت میکنه مثلا میگه این آب نجس بود حالا هم نجس این زن وقتی مورکی ها حرام مورکی وقتی مورکی الان هم, هم وقت... یک دفعه رو میکنه یه دفعه نجاست رو میکنه این فقط منحسه تو اصفاقه ما دیگه نداریم اگر بناباشه چیز دیگه قبول کنیم دیازه تو این اصول عربعه. اگر قادل باشیم به با اصول هیچ خود برای به عنوانه نیست اما برای اصفاق اثباتی به عنوان آن رو میکنه روی اون جهت، مثلا رجوب اجتناب از اصلاف علم اجمالی اون کار نداره که بک اون بگه هست و شما علم اجمالی پیدا کردی این نوست علم تخصیلی یا تخصیل و نظام مثلا ادهی از بزرگان که در اصلاف علم اجمالی اصول جاری و اصول رو جایی می اصول تخصیصی پیش اونها هم اصلاف احتیاط واجب نیست تصریح که علی راعون این چهارتا اصلی اخی که شعر اینجا آورده به لحاظ عائل هر چهار تا عائله بعادم دا داره اون در مثل اختیار که افراد معتولی مجلسی ماونجی در اربعین خودش تصویر میکنه که نمی میشه شبهه بدیع تنجید نعد و از بزرگان ما جاری که عمدهشون هم حتی تا تعریف بینه از کلمه بینه استفاده کرده. به این علم تفسیی علم اجمالی کافی نیست اینشاالله در محل خودش بعد چه هست در شماها تو بکی کلیه مربومشه قرار داده برار که از ساات ما اون رو اصلی نمیدونیم یکی از سااس احیاط که از قمای ما رو جاری میدونن اساس فاس از هم جاری چون می لاغویت لامیت اهلی هستی اصل چون به ما انجام و استثابه که استثاب را از کردم قدمای از حالما مختلف فی بود و که تقریبا متاخرین قرون کردن استصحاب رو تا اخباری ها اخباری ها به شدت در مقابل استصحاب در شباته رو پیویه ایستاده یعنی از کلم که دارم اخباری ها اختلافشون برونه یا با ها در دو سه مسئله اساسی چند مسئله احساسیه یکیش دیگه یکیش اجماع مثلا این که چرا اخباری ها جدا شده هم این رو دقت بکنید یکی از علل اساسی یعنی یکی از مسائل وقال مجرد استراتژی، مسائل اساسی اختلاف اخباری ها با اصولی ها اینها بود یکیش اجماع بود یکیش استثاب بود یکی جریان قراعت در ادهی از موارد بود این اختلافات اساسی بود یکیش هم بود بعد از مرموم وحیل بهگوهانی که ایشون در مقابل تا که قرائت اخباری دو مرتبه باز، بنای اصولی به قبول اینها شد. اول با تغییرات خودش مثلا اجماع را اینکه که بحور مرسوم را قبل دان می‌گفتند این دردی بیشتر از راعن است. استصحاب را هم چون یک نقطه مهمی که در بحث ها و معارف دینی تشرف پیش آمد این حدیث لاتن تنظیموری اینه به شرط در واقع تهارت او از زمان تغییرات که در شیخ بهایی مرمومه شهر خسین ابن عبدالسامد خارسی و آمنی قدس الله آنسته ایشون حدیث لازمون رو زیر شد برای استدلال به استثحاب مسلمه از اون زمان در کفر شیعی مثلا آمن الاته اخباری ها منامشه می کردن گفتن این روایت ظهوری در شواهد موضوعی است. و سویه های اصرار باشتن که فعنه که کنت علا یقین این این با این فعنه که چون شده. پس این به درد اطلاق بطور شامل شباط و میشه این خلاصه جریان تاریخی استطاع رو بدونی که چطور پیش شما شد بعد اصولیها ها قبول کردند عده هم حتی از اصولیها ها مثل مرموم محقق نراغی در یک صورتش شبهه تاروز رو کرد و که غالباً بعدها قبول کردن مگر مثل شیخ انساری که در شباط و که شکل در مختزی باشه بیشون قبول نمبر در وحیه شب. تا بعد از شیف که دیگه قادمان در شباهات رو پیونی قبول کردن خوصم در این کفای درسی متعارف که کفایی باشه چون قبول شده در اونجا در شباهات رو قبول شد و محبوم و استاد تقریبا اولین کسی بود که باز مقامومت کردن ایشون به خاطر قبول نکرد محبای خویی طبعا بعد از ایشان این دیگواز اشغیزیان این دیگستان چنگویشا موافقت کردن و معظمشون قبول کردن که جاری میشه در شواز حکم کلی پس بنابراین یک نقطه نقطه اخباری ها بود و اونا انصراف را رو قائل بودن یک نقطه نقطه مانو استاد بود که ایشون قائل به تعارض بود که شاید امروز یک توضیح رو راجع به این بحث ان این یک اجمالی از این اصول اربعه که مرحوم شیخ مطرح کرده محل شد تمام این اصول عربه در شبهاتو بکنی محل کلام صدرشان همین مدرگوشی مبره می‌کنیم چون محل کلام رو می‌کنیم. این اصول عربه اون وقت به استثاب بلا سبحان الله این همین در بخیر آقار برشی ماه ترافی در تیارات اینه همه با استثاب برشوارد بکنه شرایی که پهم میکنیشون در هر جایی که بر میگرد به چیز قبول نمی‌کنم کنن ارز کنم که این راجعه به اصول اجماله اون وقت برد اون وقت مرحوم در این تقسیم بندیشون در اول رسائه فرمودن از شکای ما یولا هستیه حالت سابره اولا این برد کلاب شده به که چرا شیخ فرمود یولا هستیه حالت سابره چون معروض در استثاب این است که دروحون دو داره یقین یعنی سابره راشد داره یعنی وجود حالت سابره راشد بیروزه زنده بوده روشک میکنی این که روح زدیه حالت سابره چرا؟ مراد از این چرا شیخ من حالا این معناش این است اگر حالت سابقه نبود و بله لحاظ نشود ایشون مثلا حجت نمیدونه آیا نکته اصلا استصحاب نمیدونه یا حجت نمیدونه من عرض میگم این یک بحثی بوده که بعدا مطرح شده شاگرد ایشان مرحوم های آشتیانی کتاب دیگه که من برمیزش یادم ساییدم ایشان تعبیرش اینه که وجود حالت صابقه و شکل آفه این مجرای استسحابه اما لحاظ که شیخ نرشته از شیخ هم نمکل از در درست او داده، اما لحاظ برای جریان استسحابه یعنی مجرای استسحاب یقین صابق و شکل آفه وجود حالت صابقه اما جریان استسحاب مختلی بر لحاظ اگر لحاظ شده باشه حالت صابقه جاری توی الله پلا این روشته به و حالت به اصطلاح به طور تغییر تفسیر عبارت شعر اما مرحوم استاد قدس الله سره در اینجا یک تعبیر دیگری دارن ایشون ایشون میگن این مطلبی رو که مرحوم استاد در اینجا دارن به نحو مفصلی مرگوم نایمی هم دارند از ایشون بیشتر استاد در حقیقت اباز نایمی رو گفتن بایی پرسیسی در همین جلد شماره مثلا سرگیران 448 جلد دویمه با صفحه 288 این چاپی که دسته منه یا اون چاپ میزنه صفحه یه در اینجا در صفحه 288 یشون مربوطه ده اجمالاً اینجور می‌فهمن فعلاً نشک، اما انتقالم دخواه حالاتن صبره و برای کبره شاره اولاء به اولاء فو قلم دخواه حالاتن صبره او علمت ولم یک کبره شاره این یشون اینجور معنی میکنن که قلمت ولم یک کبره شاره اینجور این لم یک کبر رای اینجور که ما شک کنه به قایشی این ناشن منشک که فل مختلی شریر رو هم دائمی دارند حالا ایشون بر شک در مستذی شده نکته علالقاله تفصیل بین شک در مستذی و شک در رافع در جریان استصحاب و کذا علاقی همین از تفصیلات علی مسکولته في بحث الاستصحاب ایشون میگه مخاط میگه نظر شیخ اینه که مثلا چون خود شیخ قائله که در مستذی در استصحاب جاری میشه نه در شک در شک استصحاب جاری میشه نه در شکل در مختصری میخواد بگه که مذهبی شیم بگیم طور میگه. چون در شکل در مختصری جاری نمیشه شاره اعتبار کن نکرده جاری نمیشه اما در شکل در رافع اعتبار کرده جاری میشه یعنی به ابواظن ناینه هم همین گفته از استادش میاد مثلا ناینه گفته کسانی که میگن مطلقا استصحاب جاری میشه چرا جاری میشه چون اعتبار اشاره اونایی که گفتن جاری نمیشه چون نمیه اعتبارش داره یعنی به عبارت مخرام مرمون استاد مرمون ناینی، این اعتبار و حالت صابقه رو مساوی با اعتبار خود اعتبار گرفتن. نه در تعریف استثاب نه تعریف استثاب گفتن استثاب عبارت از جایی که شک که یعنی حالت صابقه اعتبار شده حالا این استثاب خرجت هست یا نه اینجوری بحث نگردن ظاهر عبارت ششت که این قید موضوعه استثاب جائیت حالت سابقه توش اعتبار شده نین که حالت سابقه جایه حالا جایی که حالت سابقه اعتبار شده آیا این استثاب رجب هست کرده؟ اما اینجوری بحث میکنی؟ مردم او یاontرمون انراین اینجوری مستر کردن؟ جایی که حالت سابقه هست آیا اونجا استثاب رجبه؟ اگر رجبه فرض اعتبار کرده حالت اتبار. اگر خود جد نیست اعتبار نکرده خلاف روزاره با تو شیخه اینطور تبثیر میکنه روشنطور تبثیر ایشون اعتبار شارع و عدم اعتبار شارع رو مطابقه با حجیب گرفته نه در تعریف موضوع استثاب دفع این دفعیم استثاب معناش اینه، است هر جایی که شارع حالات سابره رو در نظر بگیر اعتبار میکن حالا اگر جایی حالت صابقه رو شاهده انزل گرفت آیا این حجبت هست یا نه؟ نه مراد ما هر هرکیسی که معتبره اینا میگه نه، اگر اعتبار کرد یعنی حجب پس برابر این تعریف است اونی که حالت صابقه داره اگر اعتبار شد، حجبت میشه ایش این اعتبار رو به معنی حجیت گرفته حالا سر این کار آیان چیه؟ سر این کار این آیان این است که از بعد از شیخ شکل در روزه های ما دیگه امسال مسلمات شد که حجیت استثاب از باب اخباره از باب تعبده چون تا قبل از این یک تصور بود که حجیت استثاب از باب اخبار نیست از باب بنار است از باب حکم عقبه ولذا استثاب به این نوع اماره می نسن. اینا آمادن گفتن اگر بگیم اخبار قلالت کرد پس اعتبار هشتاره پا حجتون اعتبار حالت سابقه این حجیت ظاهر احبارت این است که نه اصلا تفسیر استطابینه نه اینکه اعتبار این حجیت برد برد برد اون کسانی که اونجا تفسیر میکن که اینوزی شبه بازم واضح میشه استطاب که ایک امرو اغلالی گرفت اینا عقیده که در بنای اوغلا که استثاب هست تو خود حقیقت استثاب حالت سامقه مهمی لحاظش مهمه پس لحاظ حالت سامقه و خود استثابه نه خود هست. ما وقتی بحث از خود جیهد میکنید این تو آیا شارع این که این چیزیده که اوغلا تفسیر استثاب کردن حجت قرار دادی یا نداره این دوتا خیلی ضعیف هست باید یک این تفسیر دومی بود که بر این عبارت. این تفسیر متأثری ما از صاحبش می‌خوام که شاید دیگه همه هم من نگاه نکن یه حال نداره. این احتمالاً عبارت شیخ و اون تفسیر رو خورام اون در موضوعات بیشتر نه در شواهد تحصیلی نشه که یه تقریبی دیگه بخواد چون تولالی میشه دیگه اون تقریب اون بحث اینه که شیخ می‌خواد بفرمانه گاهی اوقات یک مطلب حالت سابقه نداره اما شاری اعتبار داره اما شارع اعتبار نگرفته. نه در و حجیب اصلا نگاه نکرده به حال جعل کرده اما با حالت سابقه جعل نکرده و لذا اونجا نه بحث مقتضی و مانه اصلا در اونجای ها احساساب جاری نگیشه حالا مثال بزنم برای که واضح بشد مثلا قاعده تجاوز اگر در سجده شک کرد در رکو که رکو انجام داده یا نه حالت سابقه داره در وقتی که در حال خیام بود قرارتو چرا رکو انجام ندازه؟ استثاب بکن عدم رکو چون قبلا که قطعا روکو انجام ندازه چرا شما میگید قاعده تجاوز؟ چه مخواد این رو بگه درسته بگه اینجا حالت سابقه هست اون عدم رکو لیکن این این حالت سابقه لحاظ نکرده چی رو لحاظ کرده بلا قدرت هست روکو را حاضر که تو انجام دادی و رضا در اینجا تبل این تفاوت رو عبادیشه خواهد آورد ان شاء این یکی از مباحث انصافا خیلی لطیفی است که در اصول متأخر شیعه مطرح شده که نسبت بین دلیل قائل تجاوز و قائل استصحاب چیه یک قول به ورود هست یک قول به حکومت هست که از یه قولم برد یا قاعدم به تحسیز. یعنی چی را در جایی مثلا فرض نهی مثالی چی داری اینجا استثاب جاره می که استثاب ازم قاعده تجاوز هم بگه روکور نسبت این گوزا چیه یعنی لا تنخوضی یقینه به شمت میگه شما یقین داشتی روکور انجام ندادی به این شمت یردانه لا تنخوضی بیرد از اون برم نگه بلا قدرت هست انم از شک و فیشه این لمسه فی و فی ازا جزتهو فشک و که لیته بشه نسبت درمیه این با لاستن غذر به شک این دوتا شک ها ورود هست حکومت هست یه قولی هم بردرد محاصل تحسیل لاستن غذر به شک الا اون شکی که تجاوز شده این ذرافت نقطت حالا عباره شیخ رو چیجور با اینجا اونجا معنی کرد و چه مذنیه رو باز استخواست کرد این شما صوفی هایش در اونجا خواهد این صافن بحثی رو که در خاتمه اصول با عنوان تعارض اصول شیخ رو از ابداعات اصولین متحقلشی است که مخصوصا بعد شیخ این اخصاب سلاسه من اعتقادم بایین اخصاب سلاسه بعد شیخ این سوزوی اعتقاد هر کسی مختلفه مرموم آقای ناینی و آقای به و مرموم آشانسه نصفانی خیلی در این افکاره که شکل ابداع کرده بود کار کردن و تا حد زیادی تنقیه و انتقاد و انتقاد انتقاد با همزه آفردش یعنی برگذیدن گذیمشی خیلی زیبا کار کردن هم انتقادشون بازار، جا بود بوده و هم انتقادشون اختیارشون برگذیدنشون این انصافا کار زیادی شده مخصوصا در این موارد که صادقه نداره نسبت به عین عدله است خطاب نسبت صوریه عدله قابل تجاوز بین احتیاط و بین این انصافا خیلی کار شده این سه بزرگوار می‌ذارن چه برگرد یعنی واقعا ما مثلا خاصه موارد اصولی که جواهری نگاه می‌کنین وقتی اون واشقیلیشان چه انصاری خیلی روش داده باز واقعا با بی‌قیاس به طراقی بعدی که مذهب زندانی و آذیا و غوارش حسین باشه خیلی یعنی واقعا میشه گفت که مثلا مجموعه ارزش بحث بحثه اصولی که در تقریبا 10 درصد بحثی که بعدها علما مورد بحث خیلی جلو بردن انصافا خیلی کار شده فکر در هست. و های زیادی در نظر گرفته شده و این بحث ان در ادامه پس مراد شیخ که حالات مراد اینه نه وجود حالت سابقه. تو قاضیت حالت سابقه هست اما لمی یلاحظه هر مثلا این عبا این آدار تصرف میکنه خب این حالت سابقه شید این آدار که مالک عبا نبوده مالک عبا بوده استثاب عدم ملک عبا اما شارعه این عدم ملک ملاحظه نکنه میگه تصرف میکنه پس مالکه بینید یعنی حالت سابقه رو قرد کرد پس وجود حالت سابقه کافی نیست در جریان استثابه قید در دوری لحاظت و سابقه باید لحاظ هم بشه تا لحاظ نشه اون اصلا استثاب نیست حالا این در شواهد موضوعی واضحه در شواهد حکیه تقریبی بعد عرض می کنن اونجا می شونه واضح کنه الان اینجا بگن پیچیدگی مثلا پیدا میکنه کمی غموز پیدا میکنه شرحش نشد پس مرادشه از این عباره لور زفیه حالت و سابقه یعنی وجود حالت سابقه کافی می میدونید. باید ببینیم شاره این حالت سابقه لحاظ کرد یا نه. مثلا اصاف ادم رکوع رو شاره ادم رکوع لحاظ نکرده. ادم مرک لحاظ نگرد. و اشکر سابقه ادم مرک بود و رضا استطفاق جاره نمیشه. سبر ادم جریان استطفاق اصلا شاره اون رو لحاظ نکرده بروز رضا استطفاق حالا این شاره محلقه بود یک مقدار بیشتر باشد. عظم حضور با اساستون برای باز کردن این مطلب این ابتدای بحث اولاً من دلاله هر کردم این نزاعی است که بیشتر در متأخرین شیعه پیدا شده با به اونکه آیه احتساب یا اصول امارات اگر جزء امارات هم بود جزء به اصطلاح اماراتی است که مستفاضش حجت که بعضی از اصول متاثر خودشی ابوالقازره یا جزء اماراتی است که لاعقل اقل مستفاضش نیست با این کلمه اماراتی اصول اصوله مهیار این بست های جزه اصول و جزء امارا طبعه دوار که ما ارز کردیم روشن هر جا که ادراک ما یعنی برداشت ما و تصور ما و صورت ذهنی ما از خارج به این معناه باشه که ما با خارج شرتن مستری ادراک کردیم اینجا اماراته. هر جا ادراک ما با خارج مستقیم نیست سعی کنیم خارج رو بگیریم اما خارج مستقیل نیست خارج یه قیل خورده یک واسته خورده یعنی ما آمدیم علم خودمون رو در نظر گرفتیم ولو علم جنبه طریقیت به خارج داره اما طریق صرف یعنی اینجا ما آمدیم رو علم رو حساب کرده این اصل عملی ونژاد هر چون در ذهن و روش هست یه اصطلاح معقول اولی و ثانوی در منطق داریم یه معقول اولی و ثانوی در فلسفه داریم من اصلا که یه اصطلاح معقول اولی و ثانوی در اصول داشته باشیم امارات رو بگید معقول اولی اصول رو بگید معقول ثانوی چون یک ذره شما این ساختمان رو ببینید یه چیزی معقول اولی این امارات دیو دیگه به شما میگه این خانه ثابته زید شما یعنی پیشه میشه بودم آن سالم زنده است یعنی شما مستقی با واقع روبرو میشید اسمش میشه اماره یه دیروز دروستون اون این زیر زنده بود هنوز خبر نداریم در اینجا هم حکم به زنده بودنش میکنید دقت می در اینجا هم میگید که زید زنده است اما این اعتماد شما به اون صورتی که از دیروز داشتید یعنی که کماج به یک صورت ذهنی که شده معبود ثانه به اصطلاح در مقابل ادراک اصطلاح من الخطر لا بلات لا این بنده و در هایی که بین اصول و امارات قرار می تو کلمات از اضافه بنده این که عرض کردی. در امارات شما با حد واقع تعامل میکنیم در اصول شما با حد علم تعامل میکنیم یعنی یک دفعه شما میخواید رخصالتون رو تنظیم بکنیم با واقع این اسمش اماره است تعامل شما با واقع مثلا زراره گفت که امام صادق قرمزن لحمه هرمه هرام این تعاملتون با واقعه این اماره است اما مثلا این آب کر نبود نجس بود رک میلیید نجسه این مطابقه با اون صورت ذهنه عمل کردیم چون قبل از تیم رکورد نجس بود اون صورت نجس رو هنوز تعی داریم این حال هست. این رو شما با حد دوه و لذا دق کنه هر جا که شما، می خواهید قصور رو جاری کنیم مثلا تو این فروح خیلی مشکل علم اجمالی بیرد ارواح خیلی معروف این فروح علم اجمالی اون بهترین راه و در این پرین اول بیایید اون صورت علمی و ادراکی و خوصم تنظیم بکنید چیه چه چی مقدار بیدونید بعد از دیگه ما چیه خوب دقت بکنیم در امارات شما این کار رو نمی خواهد بکنیم اما در باید این کار رو د اول صورت علمیه اون که میدانی مشخص بکنیم بعد بگیم مفعول واشه این تضقیق بین صورت ادراکی خودتون و مفعول این سرینی که اصول درست میکنه این خلاصه هست حالا فرض احتیاض اون صورت شما چیه یک قطره خون توی یکی از این دو تا سا... کاسه هست این صورت یکی این صورت علمی شما ادراکی انتباهی شما چی رو قابل اثبات از هر دو انتخاب اون صورت ادراکی شما در یکی بود این صورتی که شما خواهیم حکم بکنیم سر در از اینه نکته خواهیم هر جا شما یک صورت ذهنی داشتیم یکی عیونی داشتیم میخواییم تقونه عیونتون تصرف بکنیم بیش از عیونی بشه این اسمش اصله ولی زمانتونش به اصله این اسلا بنده است گذاشتیم معبول سانوی در اصول یعنی یک واقعی هست یک صورتی شما از اون واقع دارید یک تعاملی با این صورت علمی دارید و یه این ما اینه که این معنای اصول همون معنای و اغلایی اصولی این ها نیست این در سیره و هم هست همیشه عرض اینجوریه مثلا استثاب یک از بردیم مثال بزنم از این استثاب یک صورت علمی شما دارید اون صورت علمی شما این است که دیروز به زنده بود یه شما زید, زید این صورت به شما مطلوب شما این روز دیدن این صرف است اگر آثار رو مخانی بارو حیات دیروز روز زید این اماره است این واقعه اما اگر آثار رو و حیات امروز بار بکنی اصل این صورت عقد جاری تذین تا این صورت انجام میشه. همین به خاطر این صورت ایجاد شده تا بعدو جاری شه. بخوام بگیم ارث جاری میشه همونصره تو اعتبار نمیذونه. ما یه صورت دیگه کارش اون یه چیزه. انگیشه شما واسه یه صورت اینا ادواتی که هارمون داریم. برابر با اصل جاری. چرا؟ به خاطر اینکه ما از اون هارمون رو به دست خب شما تصور میکنیم که این در هر دو قابلیت داره. نه ببینیم اون اصل چی اصلا شما اجازه بدین شما چون علم رو اولا در علم اجمالی باید علم دائم دائما طریقی باشه چون در علم موضوع علم اجمالی منجز نیست چون علم تریقیه و نسبت انتباه با هر دوی یکیه چون اگه نسبت انتباغ در یکی نقط بود در یکی در درصد بود انحلال پیدا میکنه چون نسبت انتباه با هر دو یکیه نفس شما صورت ادعا میکنه یعنی نفس شما برای به قول شما برای بس اون صورت برای چی اون بحث دیگری چرا دیگه یعنی ما قبل از عرض صورتو دو دوباره میبینیم دیگه یه نقش هست اما شما احتبا ز دو تا میکنید ببینید شما چرا تعاملتون چه تب... ببینید چرا تعاملتون تب... همین تا نه دو معناش اینه که هر کدوم رو همون نجس میدونیم ها ما اجازه اجازه بدید. اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید این جا یه تحلیل دقیق داره و اون این که شما با این اصل میخواین کار بکنیم میخواین با اصل بگیم که اون قطعه ببینم خورد این قصه ببینم خورد این رو اصلی نمیتونه بکنه این اصل محرزه اما میخوایم با اصل بگین از اینم اجتناب بکن از اینم اجتناب بکن این اصل غیر محرزه موضوع مقدمه ایه علمی میشه اصل غیر محرزه بلزا فرق بین فایده ایه با اینکه اونجا هم همینه اجازه بدین خواهر میخواهم بگم خوب دقت بکنید اون زرافت نقطه اینجاست خوب خیلی زرافت داره شما میبینید ذهن داره در این عباد تطرف میکنه دقت کنید داره تطرف میکنه صورت ادراکی شما چیه تطرف ذهن چی میخواید اثبات بکنید منکیه ذهن به نه شارع این کار کرده. من گیام یاد علامات ملکیاییه. اماره نیست. شو ممکنه دوست باشه. او به چی تا صورت ادراکی؟ چرا؟ گفت این تصرف. ببینید؟ گفت این تصرف اجازه بدید. گفت این تصرف مصادق است با ملکیت. با اینکه که در واقع تصرف مسابقه با ملکیت نیست تصرف مسابقه با نیست پس شارع تصرف کرده این قسمش تصرف ما بخواییم این تصرف شارع تحلیل بکنیم میگیم وقتی شارع دردش میره یعنی میگیم صورت اباض شود با اون صورت من میگم این, این صورت رو یا خود ما در سیره اوغلای ادعا میکنیم مثل اسافل عدل مثل اختیار یا این صورت رو شاره و قانونگذار گذار ادعا. فرق نمیکنه. تحلیل ما اینه. سوال آیا تصرف یعنی ملکیت میگیم نه شاره تصرف و ملکیتی نمیدونه. پس چرا شاره گفت تصرف اماره ملکیت؟ میگیم اصل عملی تنظیمی این تنظیمی که ما میگیم از اساسیه. میگیم شارع اگر بعد بله اگر ما روایت داشتیم که هر تصرف واقعا ملکه دیگه حقیقتا این ملکه اماره دیگه اصل نیست اگر ما قبول کردیم که در شریعت بین تصرف که یک فرق پس اگر مثلا گفت بلا قدرت کرد بلا قدرت یعنی شردوم می‌گیرسته شک دارم یعنی بلا قدرت کرد سوال من اینه این, این بلا قدرت که چی ما اسمش می‌گیم رکوع تنبیری بیده بیده داره داره معلوم نیست که میاد نیست, همیشه ای نیست. ای نیست. نیست. محای محای این حالته داره که میگه من موثد این رو دوست معلوم از جایی نیست. اون همیشه می همیشه اینطور این بلاغدرکات تفسیر سوال آیا بلاغدرکاتی است من واقعا خب من خب شک دارم که تفسیر ما این است بلاغدرکات تنزیلا نه حقیقتا این رکوعه تندیری اسم چی کنشیم؟ قاعده تجاوز اسمشی کنشیم اصل بله نه از طبق چی؟ اونجا چی؟ اونجا میاد حد علم شما نگاه می کنه حد دول علم شما من دارم نماز میکنم این نماز یک ترکیب معین داره اینم که مسلمه همدشم من انجام دادم اینم که مسلمه هم انجام دادم اینم که مسلمه یه ترتیب طبیعی، ببین اینا رو سوار علمیار علمیه رو فرم بذاریم؟ کجا نقطه ابحامه رو خوب و سدگیره؟ میاد یا مخندر میاد یا خود ما ابداع میکنیم مجموعه یا اون صور علمیه رو جمع میکنیم یک نقطه ابداع میکنیم این تصویر ما از قادر تجاوزیم این اسمش چی میشه؟ اسمش روشه اصل موقعی ببینید دقت با اجازه دید شاره دو جور میتونه تصرف بکنه خوب دقیق کنید یکی میگه من در سجده شک کردم در رخوع میگه امزه پی سلاسه اگه گفت امزه پی سلاسه غیر محرزه چون در رخوع کار نداره وزیفه بهش میده برو ما سرق بین از محرز و غیر محرزه این گذاشتیم اگر گفت امزه پی سلاسه اجتناب بکن این میشه غیر محرزه اگر گفت رخوع انجام دادیم اگر گفت این ملاقی نجیست این شرط محرز و رضا احتیاط رو گفتیم اصل غیر محرزه چرا؟ چون یک ایتناب بکنیم که کل واحد ملاقی با نجیستی این میگذار تصرف نمیکنه، اما تو قائده تجاوه تصرف میکنه. می میگه بلا قدرکت در اون حدیثی که کل محمد من این که و احوره فمز, فمز فی سلاتک اگه گفت فمز فی سلاتک به ایگارت ما اگر وزیزه رو گفت میشه غیرمورد اگر تصرف در موضوع کرد میشه مورد <تصفيق>